السلام و علیکم و رحمت الله و بارکاتو شنوندگانی مسلمان و مومین رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید به امید این که روزهای ماه مبارک رمزانتان به خوبی سپری گردد امروز یک شنبه چارده رمزانی سال 1437 تجری قمری توجه شما را جلب می با به آخرین تحولات و پیش های دولت اسلامی و این هم سرخطی چند خبر کشته شدن 27 عسکری پولی در شهر کابل سنید سوائی. سنید سوائی. انفجار یک ماین بالای عزوی شورای ولایتی در منطقه چیلسوتون حلاکت 7 عسکر عراقی در رمادی سنید سوائی. سنید سوائی. تلفات تازه نیروهای فجر لیبی در شهر سیرت و کوشته و زخمی شدن 20 نصرانی در شهر قامشلی صلی نخواست خبرهای خود را از ویلایت خراسان آغاز میکنیم. تازه تر این خبرها از خراسان می رساند که حوالی صبح امروز یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی یک گراد موتری کستری اساکر نیپالی را در مربوطات حوزه نهوم آماجی هدف قرار داد. در سر این حمله موفقانه 27 اسکر نیپالی کشته و موتری حاملشان نیز به تاریکول از بین رفت. جزیاتی بیشتر را از همکار خود ابو مسلم خراسانی می حوالی صبح امروز در مربوطات حوزه نهوم در پل یک شیرمرد استشهادی موتر کاستر آن عیده عساکر نیپالی را مورد هدف قرار داد که در سفارت امریکا وظیفه می نمودند. این عملیات استشهادی را آن مردی که احمد نام داشت انجام داد که اسم اصلیش حیرفان الله بود. در این حمله موتر کاستر به طور کامل از بین رفته و 27 تن اثر نشنان عساکر نیپالی خوراک آتش گردید. قابل یادآوری است که بعد از چند لحظه عملیات یاد شده را امارت نامنهاد یعنی ملیشه های آیس به آهده خود گرفتند. این در حال است که این سیومین حمله را شیران خلافت اسلامی انجام می دهند اما به بسیار به سخنگوی آیس به آهده خود می گیرد. قبل از این در منطقه درونتی جلال آباد توسط یک اراده زرنج بالای اردوی مرتد انفجار صورت گرفته بود که مسئولیتش را ملیشه های آیس های به آهده گرفته بود و او را عملیات فدایی شمرده بودند. بعد از آن کشته شدن وکیل پارلمان شیرولی وردگ را هم مزدوران ایران، پاکستان و روس به آهده خود گرفته بودند. این در حال است که انشاالله به زودی تمام نوارهای ویدیویی این عملیات ها به نشر خواهد رسید و از چهره های ملیشه های پاکستانی پرده برداشته خواهد شد، اینکه چی علت که عملیات های شهرمردان خلافت اسلامی را مزدوران آیس به آهده میگیرند در رابطه با چنین عملیات ها از سلطان عزیز اعظام مشنویم اعظام صاحب جزیات عملیات امروز را با ما شریک کنید پا که خود تاسو و تا قدرمون و که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته لیله الحمد چه اسلامی خلافت زمرو دا خپل و بریدون و پلرکی پلازمینہ کابل ولرداو د کابل پزړکی لومړی بریډج لري اګه استشهادي بریدو چې زموږ یو طل استشهادي مجاهد ارফান الله چې خپل نوم ارফান الله او جهادین می احمد اګه نو د نپالی سرتیرو په کاسترر موټرفی دا سر برید وککر چې لله هم دبریت په پایله کې وتن ننیپالی غ نپال اسکار چې د امریکا په سفارت کې په بلاویلو او دو باندې کار کوو او لوپور چاروا کې هم پهکی په ټه بژل شولو او دجه همکن دی ته لاړل دو چا دنی هم د کابل خار په چ ستون سی مکرا ده شويدي چې یوه چاود د کابل د وایتی شوه پهستازی اتله فیظانی په نامه یو استستا چې دا دله سود شورا ی هم لاره او دا هغه کسو چې د شیرولی ورد جنازای هم کړی کوم افغانی پارلمان دی خو اصل ک پارلمان پا دی دغه په غړ چې کوما چاودده اسلام خلافت مجاینو کړی د هغې جنازه هم دی کړی بیا اسلام خلافت مشاهدنو ورتهګ سند هم کړی اونو په سخ دی د دغې چادنې زیای ته د تو په مخخواه نوګډه اات راغلی او چېغې د سټی او هم داامنیتیمیلي استستا ونه پکيو باغی باندې بل زپز شو من د اسلامی خلافت ازمرو لوري هغه 14 نو ور کول شو د باغی کوم په ګڼ تعداد کې وجل شو دي چې 15 د ملی ملي د سیټی کارمندان دي او از پولیس وجل شو او ګڼ شمېر نوري جوبل دي او د 14 دا دا دانو د دا اسلامی خلافت زمرو د د شیخ جلال الدین رحمه الله د انتقام د لړی لمرې چاود نه ګنلی او انشلله دغلاړی به دوواداره پاتې او د دو دوی دغه درباری او لما اوله میسوو چې هغه چاود هغه پېخي چې په امریکا فلوریدا ډلت کې د اسلامی خلافت د یو تل استشادی بریت په پا پله کرممده شوي د هغه وژې غندلي وي او همدار از دغه له میسو د هغې مزاحمت کړري او غند کي غیر او شری عمل ګنلیوو نو دوی تهمونږ ترشپ ویری چې دغه خلک ټارګ دی او انشاءلله د با شور ناخری یا وقت رو وقت, وقت به هدف کی که این عملیات را مالشه های به آهده می گیرند. دانو نو چنه خبره نه د اسلامی خلافت لله الحمد بریدون چې دی ورستر بل پر او نفوذ ذاتي لله الحمد نهواز د چې په خراسان کې بلکې په درسته نړی کې غورزنګون انقلابون او انقلابونه روان دي او د فتح کاروان در روان الحمد په مخدرمي په خراسان کې هم د اسلامی خلافت د مجاهدینو کوم کارونه چې دی ورستر بل منظم کیگی په خارونو کې د هغوی بریدون به ان شاء الله لدی ورست او ورستر بل تہ خلافت د مجاهدینو د بریډونو په پراختیا سره نو د آي اس اي مزدور ملیشه چې د امارات په نامه د هغوی ټغر مخ په توليدو دی او د بریډونو کچ ورستر بل <سؤال> کمیږي نو دوی تعید چې د اسلامي خلافت لورې د شو بریډونو په بدوي خپغه غاړه اخلي خپل بادار اي اس ته به یو راپور وراندې کوي او هغوی دغه په خوشاله زکه دغه مزدور خلق دی او د امغوی ته چې راپور بیا به هغه چاته مزدوري ورکې تنخواه ورکې نو لله الحمد ټول نړی ته روخانه د چې دغه بریدون اسوک څنګه دوی دوی د غبریدونه په دې په دوی نور کمزوري شوی دوی نور د بریدون توان نه او هغه پاک مجاهدین چې د نظام د لپاره سرلو سر لوبکول او مبارزه کوي او په خارونو خاریش د خلافت کار په نو پاتی مجبور خلافت چند بار است که مسئولیت عملیات خلافت اسلامی را ملیشه های آیس به آهده میگیرند آیا بخش اعلام خلافت کدام ثبوت در رابطه به این عملیات دارد یا خیر؟ ولی نه. ده وقر سب دریم برید ده. ده پا نیپالی سراتی رو پا کستر چکن برید شد. ده نور الامره برید نه ده دوی سوشبی روست ده برید اخلی. نو دا په خپل خاله خاره ثابت خبر ده چې الله تعالی په دغه دروغجن لعنت ویل دی بلکې الله فرمایي ولت زه په زای دوه مزاحمت الله تعالی کړه دغه دروازه نو آی ساي خېلو دوه دروازه د ډاکټر مخنبه توره پرده و ان شاء دا لمرنه برید نده چه پلا پا ده ده ده نه چې دوی د دین مخ دی د جلال آباد در زرونټي په ساحه کې د ملی وردو پا و په کم چې کوم بریده د زرنج په واسطه زرنج کې چودن کې تو کې برابر شوی او پاغه چودنه شوی و دوی هغه فیده بریده غړل او چې د په ودان دی کابل خار کې د شیرولی وردک په نامه د پارلیمان کوم غړی چې د اسلامي خلافت مجاهدين ورو لوري وجل شو دا غی بریډ پړه هم دوی په او نو دا دریم برید دې چې دوی په غاړه خلی او لله الحمد د غدریونو بریډونو مستند ویډیوګان د اسلامي خلافت مجاهدين د اعلان څنګه په لاس کې لري یو ډیر ژر د شي دا غ بخپریشي نو دوی به د دوی د دروغه بلا ثابت او روان شي او دوی دوی په فریبونو ان شاء الله ټول ول وس او ټول نړی پوي شوی دا او دا نو کومه خبره نه ده دا دریم بریډ دې چې دوی په جزاک الله خیر در اخیر اگر بر ما بگی که بیشتر از یک سال از اعلان خلافت اسلامی در ولایت خراسان میشه با وجودی که به مشکلات زیاد روبرو است اما باز هم دستاورده های زیاده دارد گفته میتونید که چی راز در این نهفته است؟ نه خیره خبره ده د ده, ده راز یوازی و یوازی پده کده چی د اسلامی خلافت د مجاهدین و سره یوازی و یوازی ده الهی دا نه د روس مزدوران دی، نه د چین مزدوران دی، نه د ایران مزدوران دی، نه د ایسای مزدوران دی دا آزاد مستقل بخپل خپلو بخو ولاړ اسلامی خلافت دی. او هدفی یوا یووا په ټولله ن ل د اسلامی شریت انفااز دی نور سسی هف لکه دا اسخ چې لری یا نورې تش په نامه اددی دللی او تنظمون چې لري او غون دی د بل چا پروت دی او لکه یو بلچ تهګډه ده دا غوی بشان وواک ته دررسسیدو او د تجارت او اقتصادی پیورتیا لپاره او یا چو کوې دپاره مبارزه نه ده اسلامی شریت د انفااز لپاره مبارزه د نوخامخه همدغه ډله کامیاب به د او ور تر بلې نو انشاءالله پر مخدونمي او دفات دا, دا کار به انشاءالله په مخه وی او د د بریدون او د چنګون د لړی چې په خلافت کې پہلامه د الله الحمد وروجي په دغه مبارک و میاش که به د دوی د دستور فتح وزيري و و ان از شما تاسو هم مننه خوشاله اوسه لحظاتي خبري سلاي خلافت خبرҳои خضرا با تحولات ولایت خراسان ادامه میدهیم تازه ترین خبرها میگوید که شیران خلافت اسلامی حوالی صبح امروز موتر خامل ملای درباری به نام الله فیزانی را در منطقه چیل ستون شهر کابل با استفاده از ماینی جاسازی شده هدف قرار دادند. خبر میگوید که در اثر این انفجار 5 عضوی امنیت ملی، سه پلیس، دو کارمند سی تی پی تی گردیده و خود فیزانی جراحت سنگین برداشته است. جزیاتی بیشتر را باز هم از ابو مسلم خراسانی می شنفیم. حوالی صبح امروز در شهر کابل، در منطقه چلستون در اثر دو انفجار ماین بالای عضو شورای ولایتی و در اسطلاح شورای علما یعنی علماء درباری و یا علماء سو صورت گرفت. انفجار اول در حال صورت گرفت که موتر حامل اطاولا فیزانی که عضو فعال شورا بود از ساحه میکرد می کرد. اطاولا فیزانی آن ملای درباری بود که چند قبل از طرف شیران خلافت اسلامی برای یک وکیل پارلمان یعنی شیرولی وردک حمله صورت گرفته بود که جنازه وی را عطاالله فیضانی خوانده بود گفته می شود که این حمله را خلافت اسلامی سلسله انتقام شیخ جلال الدین رحمه الله اولین انتقام شمرده اند که ادامه خواهد داشت قابل یادآوری است که در حمله یاد شده فیزانی جراحت سنگین برداشته است نزدیک است ان الله که در خدمت کفر روانه جهنم گردد خبر می که بعد از انفجار موترفیزانی در همانجا جا کارمندان سی تی پی تی امنیت ملی و پولیس که خاطر نظارت گرده هم آمده بودند از طرف شعران خلافت اسلامی توسط یک ماه دیگر جا شده که انفجار نمود پین از کارمندان امنیت ملی و دو تن کارمندان سی پی تی و سی از کارمندان پلیس را نیز روانه جهنم نمود خلافت اسلامی برای تمام حکام تواقید اختار می دهد که اگر از کفر خود دست نکشند هیچ دیوارهای محافظتی و نکدام برنامه های دیگرشان مانع آمدن شیران خلافت بسویشان شده می تواند لحظات خبری خلافت ایدامه خبرها گزارش‌های رسیده از ایرانه خاکس که نیروهای دولت اسلامی بر موازی ارتش رافضی در اطراف منطقه الحامزیه در شمال شرقی رمادی حمله کردند. خبر می‌گوید که در این حمله 7 تن از نیروهای عراقی کشته شدند. گزارش از فلوجه میرساند که در جریان دو روز در گیری در مناطق مختلف این شهر بیش از 300 عسكري عراقی کشته شدند. این است که خود رافیز بر آن اقرار کردند. خبرها از لیبیا میگوید که در اثر درگیری ها میانی مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای فجر لیبی در غرب شهر سیرت چاردتن از اساکر فجر لیبی کشته شدند. در همین حال یک حمله کنند استشادی تجمع همین نیروها را در همین محل آماج قرار داد. اما از جزییات این حمله تا کنون معلومات دقیق به دست نیامده است. از لیبیا به سوریه می رویم. خبرها میگوید که نیروهای دولت اسلامی یک منطقه ای را در جنوب شهری طبقه تصرف کرده و یک تانک را غنیمت گرفتند در همین حال در اثر یک حمله استشادی در همین شهر دست کم 20 عسكري نیرهای نظام سوری و شیبی نظامیان شیعه کشته شدند خبر میگوید که در همین حمله یک عراده تانک دشمن نیز از بین رفته است یک خبر دیگر نیز از این شهر میرساند که در اثر انفجار یک موین جاسوسی شده در اطراف میدان ثوره در جنوب همین شهر یک غراده موتر حامل با هفت سرنشینش از بین رفته است گفتن اماند که در پی این حملات جنگنده های روسیه بیش از سی حمله هوایی را در اطراف میدانی سووره انجام دادند که منجر به شهادتی تعداد افراد ملکی گردید. خبرها از شهر مینبیچ حاکی است که در اثرری در گیری های جاری ده کردی مللحد در شرق این شهر کشته شدند این در حال است که جنگنده های هوایی آمریکا یک ساختمان را در شهر مینبیچ واقع در حومه حلب آماش قرار دادند که در یک فرد ملکی شهید و ذاتن دیگر به شمول چند کودک و زن جراحت برداشتند نیروهای دولت اسلامی تایید تازه‌ترین حملاتشان بر دو مقره نیروهای نظامی سوری در شرق تدمور تسلط یافتند در سر درگیری هایی که در این محل رخ داد هشت اسکر نظامی سوری کشته و یک مرتد دیگر به اسارت درآمد و خبری اخیر این که یک تن از استشادیانی دولت اسلامی با استفاده از است کمربند انفجاری بالای نیروهای نصرونی در شهر قامشلی حمله کرده است در این حمله موفقانه هشت نصرانی کشته و دوازدتن دیگرشان جراحت سنگین برداشتند. شنوندگان عزیز این بود آخرین تحولات و پیش های دولت اسلامی، استاد جیتون جهان سپاس حال برنامه گل‌های خراسان آماده انتشار است. گل‌های خراسان آیا برنامه فکری، تعلیمی و تربیتی باشه آقا، با البته اختراقای ساتر می کنه خلاف اسلام است. میتونی برام بگی که کدام کدام دوهاری یاد داری؟ داینم خوردن، دعای خوستان، دعای خاو خو کردن. اینها اطفال شیران خلافتند. اینها آینده درخشان خلافتند. پیام بر است که بیان به خلافت اسلامی و از گناهان تو کن. بله، بله. اینها گل‌های خراسانند. که در کوه های خوشک جنگل های بی پایان و آواز های حیبتناک صلاح های سقیله به فکر و روحه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است دیجه بمبوری می یا جنگ می یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزا را ترسی؟ نه، همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند الله، دل گفته اطفال خراسان دو از رادیو صدای خلافت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الباب كتاب نوازل كريم بسيط يا محمد بركة دودشداء طاق التدبرقنا ويتيشرا طاين كفهمنا السادقين أهل الخيرات شاريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحب بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و براکتو شنوندگان عزیزی رادیو صدای خلافت با یکی از برنامه‌های های دیگری گلهای خراسان خوش آمدید یقینا کتابی که از سوی الله جل جلاله نازل شده کتابی است که در حقیقت برای اهل خیرت پند و نصیحت است امروز باز هم در برنامه گلهای خراسان اطفال نازنین با خود داریم و با ایشان درباره شرک چنانچی در هفته قبلی هم وعده نموده بودیم از اطفال نازنین سوالاتی را می پرسیم و اطفال نازنین هم به سوالاتی که از ایشان مطرح می کنیم جواب داد. خب شما را زیاد منتظر نمیمانیم میریم سراغ اطفال نازنین اول تلحه بیادر حاضر است سلام علیکم و رحمت الله و علیکم سلام و رحمت الله داری تلحه خوب استی؟ الحمدلله چنانچه با آوازی تلحه بلدیت دارین در هفته گذشته هم با برنامه ما بود قرار که وعده کرده بودیم درباره شرک از ایشان سوال میکنیم بفرما تلحه در مورد شرک چی گفتنی ها داری؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این الشرک لظلم و نظیم بدرسته شرک هر زلم بزرگ است <تصفيق> <تصفيق> اینکه <مشار> الله مال هرگیز رای ن خوهد بود بندی در مادر شی کند آنهانا پر شتقره به شما بغم بر مسل است باشد حیز الله متعا می فرماد ان الممساجداریله فل درم الله حده اینکه هم معوج خاص الله بس همرای ال و کسی را و چیزی زیرا نخواد معش الله جذا الله خرا تلح، مساجد همگی از آن الله است در مساجد همرای الله کسی دیگری را نخونه یعنی کسی دیگری را در مساجد با عبادت غیر الله نپردازید. خب تلحب در جزاک الله خیرا سپاس بسر مسائل مهم را ارائه کرد در حقیقت تمام روی زمین مسجد برای امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و تمام حیات امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که به دین اسلام مشرف باشند در حقیقت نزد الله متعال عبادت است. بار سراتی جزاك الله خيرا حال سراغ بیادر دیگری ما میرویم السلام علیکم و علیکم السلام شما ابراهیم ابراهیم بسیار خوش آمدیم به برنامه جزاك الله خیر قراری که شما شنیدین طلحه بیادر در مورد شرک آیتی تدا و مساله را بیان کرد و از شما میپرسیم که انواع شرک برای ما بیان کنین انواع شرک کدام هاست یعنی کمی مفصل تر برای شنوندگان عزیز معلومات بدین بسم الله الرحمن الرحيم شرك سخن ماشاء شرك أكبر شرك أصغار شرك خفية شرك أكبر هو كمش أزملت إبراهيم خارج ماكنه شرك أصغر شرك أكبر رهوجات عظم الله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ظل ظالم بعيدا وأللهنا ما باقشانك كشركة شركات وأس شركات يدرن وفي كشركة خاد مخفيان ماكنده كثره كي كيركدان دار غومرهي دور گرفتار لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنهم ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما النار وما للظالمين من أنصار و واقعا کسانی که کافر شدن گفتن گفتند که ما پسر پسر مریم خدا است. اما پسر پسر مریم با آنها گفت: فای فرزندان اسرائیل، الله را عبادت کنید که هم را ما است و هم را شما است. و واقعا کسانی که شرک کردند، جنت برایشان حرام است و برای این ظالمان هیچ از یار نخواهد نیست. نخواست شما اشاره کردیم که شرک بس قسمت شرک اکبر و شرک اصغر و شرک خفیه و میشه در مورد شرک اصغر برای ما معلومات بدین. البتة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وهرون كساكلا امبل بلاقاي پرادگارش بس است بويد كور نه كنند و در پرستيش پرادگارش كسرش شرين نكنند شرك اصغر بر ريوم و ماهرا الله قسم خوردن حجت من خنفه بغير الله فقد أشرك و هر كساك با غير الله قسم خورد فسو شركرداست در مورد الشرك خفيه معلومات بتين محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم الشرك في هذه الأمة من دبيب النمّة السوداء على صفات السوداء في ظلمة الليل. محمد صلى الله عليه وسلم پیشرگ در امامت من مخفی نهان است که مرچ سیاه در شب تاری در تخت افروش سنگ سیاه حرکت میکند مثل همین چی پنهان است شرک در امامت من پنهان است گفتن خب جزاك الله خيرا بیادر محترم برای ما به مفصل هر کدامش بیان کردین حال نوبت میرسه و بیاداری دیگه ما السلام علیکم و رحمت الله وعلیकुम السلام و رحمت الله وبرک اسمی شما جعفر جعفر ماشالله با آواز شم شاید آشنایی داشته باشین در برنامه قبلی هم اشتراک کرده بودن خیلی خوش آمدین جزاکالله خیران آمده است که با تو سوالاتی را مطرح کنم جواب بتی؟ انشالله پیشتر برادر دیگه ما اقصام شرک بیان کردند که و سه قسم بوده و هر کداموش تشریح کرد و مثالها ما برد حال سوالی را متوجه تو میسازم که شرک اکبر بسم الله الرحمن الرحيم شرك أكبر بشارنا تقسيم مشاد كم در إطاع در در دعاء در إراداتنا در محبات در دعاء بحجات فإذا ركبوا في الفلك دعوا والله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون مشركون خلفدان در كشت سور شدان أميقفدان خالصون بر الله دعا مكردان الله ما را زمین بحر نجود بده و وقتی نجود میافتن ازمون بحر با خشکی الله آنها را نجود میاد بازم شرک میکردن میگفتن بود خلی ما نجات دادن در ایجاد نیات و حجت من كان یورید الحیات الدنیا وزینه و فی لیم اعمالم فیا و هم لا یبخشون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كسي كمي خواهد حياة الدنيا وزينة أنا رأى مدين بكم كوسا وأنا تشنون سنقدر أخراد ناس براش ومقار أوتاش وحرأوين حبت شودون شذيك عمل كردن وباطل شذيك عمل كردان ازرن در می دنیا کسانی هستند که می خوانن حیات دنیا و آن را. الله تعالا به کم خود می دانیم بفهمن که در آخرت برایشون مگر آتش جز آتش دیگر برایشون چیزی نیست. ماشاءالله تکبیر. الله ها. سیب چی بود ادامه بدهی کو. با مثالها. شرک در اعتقاد. اتخاذ احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله. والمسيح ابن مريم وما امره إلا لعبدو إله وواحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون مغرفتن دونشمن دونشمندون خود وطوهدان خود را بأرباب بغير از الله ومسيح بسر مريم را خدا مغرفتن. وعمر نشدن مغر اين كي الله يغانا را عبادت كنان نس معبود برحق جزوات فاكس از آن چزي كي شرق مي يعني يهودنا و نصارى يجرفتم بغير الله رب الشرك در محبته من الناس من يتخذون من دون الله ءادادا يحبون كحب الله از مردون كسان اونكه الله هم تويان نگران مانهارو دوست بمثل دوست الله امروز هم در دنیا کسانی هستند که پاچه های خود را با غیر از الله دوست داشتند بالاتر بدونن که به اینها شرک اکبر کردند در شرک اکبر گرفتار شدند خب ماشاالله جعفر بیادر به خوبی تشریح کرده 490 شرکی اکبره تشکر جزاك الله خيرا خب شنوندگان عزیز و محترم شما صحبت های اطفال نازنین در مورد شرک و انواع آن شنیدین حال میریم سراغ اطفال دیگری خود السلام علیکم و رحمت الله برگات ملیک و سلام برگات نخوز طرفی بیادر که طرف دستراست مست میروم السلام علیکم ملیک سلام اسم شما؟ نور اسلام نور اسلام چنانچه در جریان برنامه بر ما واده کرده که اصول دین بیان کنی حال بر ما اصول دین بیان کو که چند قسم است؟ سوتان لاش ناتان دین شناتان رسل رسل امیر میشا به زبان روسی گفته می‌تونی؟ знать Аллах знать просто на сла هر کدوم چه تشریکو به زبان فارسی؟ چون الله نه دین ش رسول الله علیه و خب ما شاء الله جزاک الله خیرا محترم نور اسلام در حقیقت اینم چیزی است که اصول دین اسلام است شناختن الله شناختنی دین و شناختن رسول الله صلی الله علیه وسلم برای هر مسلمان واجب است و از اصول دین اسلام است حال ما از زبان خودت اصول دین ادونستیم که سه قسم است حال میشه برای ما بگی که برای هر مسلمان چند چیز لازم است هر انسان چه چه واجب است. ایلی اعمال دواد صبر. ایلی شنه هتانی الله دین شنه هتانی رسولان سلام الله خیرن نور اسلام در حال میریم سراغی بیادر دیگر ما. السلام علیکم. علیکم السلام. با آغاز دارین سلمان در خدمت ماست. خیلی خوش آمدید به برنامه. جزاک الله خیرن. خواب سوال ازی قرار است که چیزهای لازمی و واجبی برای هر مسلمان کدام هاست؟ مسائل اول اینکه الله اللهم را افرید پر و پرورش کرد و ارزق داد و پیانبر فرستاد و راه ما و کسی که پیانبر را اعتاد کنه داخل بیش می شود کسی که نواتاتی کند داخل جهنم می شود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخزا وبيلا ما بسوئي في السوداء إن كبار شما قواس حمجرالي بسوئي فرعون ونبار في السوداء أما فرعون أزوم بانبار وفانونيك اللي زوره بأقبطي ساخقرفتهم بسوئي دموم إنك الله متعال حرق زرازين أخوات بطيبان دي دار وانا فرشتين وقرار باشده نا پیغمبر مرسال باشد حجت وان المساجد لله فلا تدعوها الله احد وان كان المساجد خاص الله بسهم راهي الله يكسره وتشهروا وخانيد جزاك الله خير سلمان بيادر جاء سؤال ايراد مشكي كسي كي مرتكب الشرك اكبر شفاء الله تعالى مغفرتوش ميكونه ورا لين اشركت لاحبطنا ولك ولا من الخاسرين اگر چی تو شیر کرد هر آنی حبت میشود، آنچه که عمل میکنی پس از یون کارو میشی. ولی او اشرقان حبتان هم مکان عملون. و اگر شیر میکردن هر آنی حبت میشود، آنچه که عمل میکرند. مسؤول سعیم اینکه کسی که الله را با بشناسد گی از نرسد واسط پیامبرش اطاعت کند هرکس برای او جایز نیست که با که الله و رسول مخالف نیب آزاد دوستی بر خارق نزد اینکه بدالانه شمشاد، اینکه نزدیکتره خشم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون منحاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو شيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نمای او قالمرا که به الله و رسول پاس ایمان داشته باشند نه که با کسانی که الله و رسولش مخالفت می دوستی کند ولاو اینکه پدرانشان باشد فرزندانشون باشد برادرانشان باشند. باشد نزدیکترین خویشاوندانش باشد اینانند که الله در دل‌هایشان نقش ایمان نگاشته است و به فیض از جانب خویش و سوراشان داشته است خب سلام بیادر تشکر از اینکه آیته و خوبی تلاوت کردی و معنایش هم گفتی ما شنیدیم که در ای آیت نهفته بود که ایتو قوم مؤمن شده نمیتونه که پدارانش و برادرانش پسرانش و از نزدیکانش که کدام کسی مشرک یا کافر باشه رو به دوستی بگیره ایتو مؤمن پیدا نمیشه د آیت همیتو ذکر بود خب ماشاءالله جزاک الله خیرا سلمان بیادر از که مساجد بسیار مهمی را بر ما شرح کردی به هر صورت جزاک الله خیرا با سلمان بیادر ما هم رسیدیم با آخری برنامه تا برنامهای دیگر، الله باز هم با واقعیت‌هایی تازه در خدماتش ما قرار می‌گیریم. همیتون را با الله واحد و لاّ Yazal مسباری. مسلّم عليكم و رحمه الله و بركاته. بی شرع الله تطّالو و جانو شریعت ال منارات و الحب واللذيذ قد يجي وباء بخزيه الكفر المذان أصول الدين تزهر بعد يبس وقام العدل وانتظم المجال فبادر يا أخي وادفع زكاة بيها الأموال تزكر والغلال يضعفها لك المولى ويوبي وتستل الضائن والكلال فعضوب النواجذ وغنامها فتحت ظلالها تسم الفعال يضعيف ولك المولا ويابي وتستل الضائن والكالان فعضوب النواجذ وغنامها فتحت تسم الفعال فعضوب النواجذ وغنامها فتحت ظلالها تسم الفعال